گوگرانی از این رو خوشش اید. سلطان لب خوشحالی لباسی شسته که خواننواک تیم چشتم جهوری هزاری مکریانی هتی نو ولتان فرمن لگلمن بن. هجاری مکریانی لوکاتی که برگو بو لبغداو برو شاخو دشتکانی کردستان بو اوی بچید لویل راڈیو خزمتی شورج بکا بو من دجارتو و دنوسی لکانی مرانو چوینه چوار قرنه حشاماتی کی زور بو کوبونوی توتنکی و چلتوککی هر هبو بلان بدزی برزانی پیشمرگه دعوتیان دکرد بنیشانه دکردنی ببرد سرگرم بون چند روش یک بو دگل خاون بوم که اغلب آغاه گندبون گوشت و پلاون دادنی پیش نیارم کرد کشور ویده چه شریم از زور کشی هر گندیک دو جاری میوان بین خوردن یا نمینه بوی من نیکینه جمو دمی حسابی لحظه یک دب رنج دنرنیس کن نوکو سوارو آشتان بخوین هر لحال کی گندن اگر بالای این توله سالی داشوار یا پینز دی نربونانی پیش مرگ بدم زوری پی خوش دبی چنکسک کهکلوانه احمد توفیق بوتیان نخر خلق با میوانداریه فخرده کن و اگر بیگوارین دلیانداش که پیش نیاره کم قبول نکره بنککانی حیزب با حساب و دستنده بود تنانت هر کس روشه سی دنک نوک نازانم چند دنگ میسک و خلاصه باورد حساب دیاندر آیا کمن اون بلاو پسند بود هر چندشن بیسته و کما مستقر کرده کن پاروات چوریان هیا حزده کم باس یک لسر احمد توفیق بکم بو حوالجر احمد توفیق یان بلم سید عبدالله الله اس حاقیم لشمدید لا یک 12 سال لمن کم تمنتر و تی د شما چیکو سلوواکی ور دکه شمن ک او ک زور مارکسی بو لا یواب او لو بری دریا و دین ولاتان دا جردکن استعماریو سگ سگ بابن استعماریو سگو سگ بابن من دم گود فرق چی له وشکانی ول دریا و بین اگر بم خو سگو زالمه خواردن خواردنه به کوچکو کیردو چنګل به یان به چنګونینو کو گاز به دای ګوت یمه دبه وی رای ایرانیکانی تر و بر رحمتي شوی کوي نو کوردی عراقیش وی رای عربو کوردی ترکیا وی رای همو ترککان من دم ګوت بنا من بروا موانی کوردی ایرانیو عراقیو ترکیای هبه من خلکی ولاته کی ګورم ناوی کوردستان سې څوار دولت دا کردو دی دورات گورکانیش یاریدهان ادن که بزاری اوان بمن خون با ایم خو من لبیر اگر یاری من بکن سپاسی اندکین زور من لوگ سانه کرد نا او لبیری خوی دهات ده خوار نا منیش برو علمکی او سر ده کوتم لپاش حت نوی برزانی لبغدا توشی بو وادیار و دیار بو لسابلاغ لسر کردهاتی خوی لگرتنیک رزگر کرده بو حت بو عراق با نناسیوی لسولیمانی خوی گرت ب چند برادر یکی ای کردی ایرانی حالاتوی دست جاندار مو پولیسی ایران لیکو بو بو نوا بناوی کومو نا کومل اکیان پیکو نا بو. احمد سروکان بو دیار بو سروکیاتی حزب دیموکراتی کردی ایرانیشی دکرد لسلیمانی و بدزی هاتو دیوی ایرانی اندکرد مدیر امن سلیمانی که حسین شیروانی و کردی کی باش بو لگرتنی عراقی دپارستن به حتنوی برزانی کرد. لبغدا دمدی توو بوینوه اشنا شر برزنی و قاسم گرم بو, بو. احمد حت بغداو پیم سیر بو چون توانیوه لو ریگه دجواره خوی در بس کب و جلکو در من بو برزن برم کهی چند نید و یکو تین جلکو در منی زور من پیدا کرد یستش نزنم چونی گیند نو برزن که براستی کاری که ازایه نبو هر وحاچو بو لبیروت و دانا آدم شمیتی پیامنیری امریکایی گیند بولای بارزانی که لکتیبکی سفر یک بوناو پیا آزاد آزاکان دا زور بچالاکیو نترسانو کارزانی احمد توفیق حل داله کیش لبغدا پیک و چوین سفارتی مصر وقباسم کرد عربی ندازانی من ترجمانیم دکل لقصکرنی سیاسی دا باوریم هات برچاو لچور قرنشت دیتموه بلاند امجاره او فلسفه فلطه فلتی پيشونه مابو کمن تی نغم بو بو کول دي کی خو مالیو هر کس کردستان له کورد د جربکا له برازو استعماری شپیستره له کو بنوي کی داشت چندیک لا هاوکرانی ایرانی خو پی ناسندم ک صلاح مهتدی بناوی مصطفی محمد اسماعیل محمودا بناوی کاوا سلیمان معینی بناوی فائق امین مینشمو چن کس کی تریجبن احمد وتی اگر له خوان به زور من پی خوشا وتم اگر مطلبته اویا له حزب دیموکراطي ایران بم منابم چونکو من او 25 ساله له ایران در کوتمه هیڅ شره زیم نمو من له کوردستان عراق د وخت بله مرد درشت ان حمود ناسمو دژ زانم به چن پریون لبر اوه وک حوالی شي ناحزبی به دوستم حساب کن وتی زور رازی قرار درابوها همو حزبی و لاگرانی شورش لاغاوتو راشنبینان لا کویا کوبنو لا سرباسی حق کرد حساب کنه د گل دولتی کودتای بهس به کنه تویش چوینا کویا ملا مصطفی ل گوندی توپزاوا لنزیک شهر منځلی گر روزانه د چوا سراوی حماموک اگر کار یکه بوایا د هاته مالیکا که زیاد ل شر یوار دی ملا مصطفی ل سرکیوی کی كي رشدی کوری روزاوی حماموکه با پیه ورده ورده پیهلگرام که اصر کودم دیتمی و تی خواه شکر تو لوهاب زور باشتری دیاره داگل من درده دا بی لشکرو و میوان لمالان شهر دا مزران زبیحی و من چوی امام قادری باغوان که لپیش دا لماهاباد نوی سید حمقالبو لپاش زور حبس و جزیه کشان کود كو کویو با غوانی دکرد، دکره তাহیر یحیی سره وزیرو کوملک لپی او ماقولانی بس بو تویش حد نه خلکن ابن خلکانی می جونوس او بر له هر شت وت یان جهژن نوروز تن بودکې نه مختاری بینن، له مرکزی تان ددینې قصه زور هاتو چو کمن هیت اګاش چون بو. حزب قبولی کردو قرار در به خنه بر بیرو راګشتیو کنگره لکویا تشکیل بکن هاتینه رانی ما زنم چان پروژه لوی ماینه و اونده ده زانم کیچ نه ده هشت بخوین کوشش لاستیک کان نشان ل دزیبوم ل رانیوا برو کویا هاتین لسابلاغش کناوی شاعر ملی ولن زیکانی پیشوابوم ل پاشان شهتا استاش کیفم بدعوت سیاسی نهت و نا یا پیاو دولمندان کان کویا دعوتی د ان ود چت په خوشا بوت لبنین م مهجر منج دمګو دوکولو له دوکولیزه تر نخو خو بت حسین يتوا تورده بنو چند نانجیبم زربین وازیان لیدین جنگی کنگرو یابو بیان منم قادر دیګو د چمه بازار چ بکرم منج دمګو کنگرو مست یا دوکولو ایش بقد منی حزلی اکل روژه له سر میرانی صالح بگ لی میرانی شقلاوه بانگی کل هجار وره گنجک حاتیه داری سابراغی ما هیچ دزمانی ناگم هر داری مزورم مزورم اتو بزانه داری چه بله گنج نوی حسن برازه احمد توفیقه لما میخوی دپرسه خوشنابه کو سابراغی که دقنشکاو تیک نگیشتون حسن وشه منزورم بکرده او اولایوه مزورم دبی چه بین لکو یا من دکر کرد توپ یکم لپشتی مسعود برزانی ده برزانی یک حد. پیویتم تو چون توپ لپشتی مسعود ده دهی؟ منشویتم که که اوه تقلایه؟ اغاو نوکری تیه دالیه ده دا دمو چه تریش؟ زوری پی سیر بو. زبی حیلم بینده با کروجی که روژی کودتای بعض پادگانی کرکو خبریان دعوته. با توپ و تنکو همو چکیکوه دبن قبول شرشو قبولناکن جردستی بع وامحزب قبولی نکرد و، وتویا ایمان حبز دا قول و قراری خومن دچار بعض بری و تو، باقیجان داناتین، جوابی پرسیار کم، لا جلال کلا بغداد لیم کرد دست کوت. طاتچوی برزنی شو کک برائم احمد شون دکره روج یک یک به برائم گوت کبرا یک له هر دیک لا قان سقد کر لدیهات دیحات چرچیتی دکر. زور من خبری زور گرینگ بودی نی هیچ چیشی لحزب نوی دله قربندستان دلین تو دبی به حشاب کې ل حزب پارتي د نارېګی کاسپید ندین دلین چی وو مصلحت بنوسم من پارتي نیم برائم گوتی یو پتانچونه زورمان زور پی باشه او حشاب که چونکه زور زور بحریه بقام که شاده راسه و دبی او سگبابه اعدام کره و چون پی اوتین بابو مسلحاتیش بی سر بو دجمن نویده که جاریک دو بدو بوین وتم برا حیف یو دلی بارزانی بشکینن هیزو حیبت و فرمانده او بویا نابی بکاری هیچ و پوچ لدست خوتان بدن و تی چی؟ وتم وک او یودسن لبنو پول ددن به عبد الواحد حاجی ملو ک دگل خمنبو ل بارزانی بتکا قمر بعضی کوی هر او شوا پول کی یولده بنو اشکرا دبی وک او ککوی بارزانی کومورید دا کی یان بانگ بارزنه بنگ دکن 500 دینری ادن کواز ل بارزانی بینی ککو پول ک ل نو دسرکد ل پیش بارزانی د انیو دله ازبنی من نه زانم چنده دبیژن تا به مره بارزانی داله به خود حال لوش پیستر شلتی سلیمانی چکداری او دالن من داله که میزرسور اقرایی من حمام هرچون که وقت بارزانیان دچه چه برایم حاشای لوانه کرد بلا موتی بارزانی با تا چکلی چاوی حزب کوری کرد اگر چکلکش دار بخین هر کور دبین بین منیشوتم کد برایم اوانی بانگیر رایوا بارزانی هموی بیستون اگر وقت دفرم پروجیکټ د بدود د غلځبه هیڅ څونه حماموک بولای برزنی قسکان مجلسه کم لبیر نه ماوه بل ام هر له دوري برزنی دغره زبيحي اگر کس له برزنی نه به منتنیا کس کم کبج یعنی وتی اگر به تنیا له سل برډګ مینه ته چونکه د حق بوه روژکی دی عبدالحسین فیلیو ید الله فیلی کاردوک للیجنی مرکزی دابون لحماموک بملا مصطفی انگوت امانه مبه سن اوانه بو کاتار دجاتی پارتی اندکرد خیانت به مسئله کوردکن توک سرداری کی به برشت محاکمین بکوشاتی لیم اوانی وقت شارزاب خوازه اگر به گناه بردر چون کا به گناه بار در بو مونر رسمیت یکم هبول لخمو حلمدا و تم جناب بابې لري کورتې من دور بدور یكتر متهم مکن راست پر سوړام یکبال نه و تاندابه اگر خیانت ناکن خو هل ناګری بخراپیان بزانی اگر خیانت بشکن با کومل شاید بزنن نو لرز درکون لامو هیچ شور اگر لسرزوی کی سختو بمتمانه رانه وسته بنی بوج به تک برزنی فرموئ بقصه هسته ناکم بیان کوجم د بنه شهیدی دکرین پیوی گورل لای دل بلام لیم رونه بوخهان آب روی خویان من خویان تنگی نم چه دکن بابیکن لبیر مشابه عمر دبای بهاد چمدانی که رشی پیبو دایبا ملا مصطفا دعای دو راجی جویان دوان صتفانی برنوی هنوا وقت من پارتي به پرسی ملا مصطفا دگل ایرانیان پیوندیگرت وا ایسا پچمانیس هواکی هاتو بر یاری دوا ایران بذی و یاریدن بده با شرطه برزنی که دجمنی سرسخت شاو کومونیستی موسکویه لنو خویان در اوین پول و تفنگیان هندگی ورگردوه برزانی باوی زنیوه با رازی کردنی برزنی هندگی پولیان هنوه او تویانه اما بشی تو با لشکر کشی و امافیال که لی ایرانی دکینو هر مخلیستین که برزنی گو تویان تفنگ کانتان چی لیکرد چون او دوازده تفنگشن هنوه وادیار بو ایران بلام هم به برزانی ترسی، پارتی برنامه حزبکشی هموی بروه به سیستم مرکسی بود، همو تکیشی لسر اوده کرد که عرب برامان نو موسکوش قبله مانه، او همو چکه روسیا که به دست عرب لدوران قسم ده، لکردستان دکر کرده بود، توسقالک لعیمان حزبی کم نکرده بود، و تین کاغنوی که گوره، لدشت دکریه به مناسبه ججنین و روزه بود، شعر یکم بناو کل دیوانا کم در چاب کرده، لحمه مقبو برزانیم خوانده، بطور رای گوتی، رازی نیم بخوانده، نا به کس تاریف مند که، بیدرینه، و تم باشی گوه بگره، بیشی درینم لبرم کرده، نشیلن بیخوانده، روز جمعه دچم لسر میکروفونی مزگو تیگو را به خلقی دلیم، او دم دتوانی درمکی، دتوانی برگولم دیم، زوری گوتو هیچم نگود، که گوه ملام مصطفی نه هاتبو بل ام توي و کی میوانو چقدران لدشتی چک دران د دشتی لای گیسټ هاوس میهمان سرا کو بو نو سکو یک لدارو تخت برځو کربو همو سرانی حزب کرسی و نیمکتیان بودن رابو ب نیو دایره کې پن رونیشتبون خاوکیش لو نیو دایره زله ده په پشتيانه و په من لای گیسټ هاوس بم یک ګوټي توهی چتنی بهخوینيوه و تم نخیر، بده خواه، چون که هر کس چی داله، نسخه بده کنترول بکره، برانبر به سیاست حزب بیتوه، او سا اجازه بدره، و تار حزب خند آیوه، چنو تار اکی دیکی بشوینده هاد، او دمکه هم کس بو گونه یو، دنیایی که کرومد بو، سبریگ برو خلق چومو بکاگ برایمم گود، اری بو چی شعر اکی خوام نه لایوه بو شعری تازهه، نه وقتی اوش ما بو تا کنترول بکره اشاره ده بکمال محیدین که بیر جیش نکبو اوش لسر میکروفونه و بدنگی برزویتی ایستا کک هجار لشعر باشکانی خوی شتیک من بودخونه توا فرمو کک هجار سر لحواله و هر بیتیکم کدخونده و دنگی آفریمو بارک الله ما مستعن برزده بو دهی و پاتی کوا بارک الله دستکالت خوش بی تا گهشت ما بندی سیهمو گئیم او دو بیتا آرب من داواکاری مردن من بو لسر خاکی کردواری رشو پاپتی داباری وگ بسم الله لجن کبکی قد تاقه ما مستقیق نما کرسیو نیم کد بطالو حتال منو نازنم آسمان حلی کشان عرض خوطی دن چونوالا پر غیب بون بلام چپ لغیزان و هوره حشاماتکا حشری کرد همو داخل دل لعرب لبومباو تياري روس نشيان ورابو گلشبكن اوامن بزمان دل اوان دل هردهان گود بيليوا اي رحمت لبابت دي سان بيلي زوري كيشا تا شعرم خلاص کر كمال محيدين كده پیش دا زوري تعريف کرده بون ما مستعي حلقوتو شعيري بيوينة چوا پشت میکروفونوتي براياني عزيز اوخساني هجار برو بروي حزب من درنا بره او بوخوی مسئولي ا همو بی سری که زور دلخوش کرده بو بدهان کس چو گونمالی مم قدر گوته بوین شعری کراکه تو من زور پیا خوش بو امجبوب بو گلته خیزانی مم قدر دای گود هجار کوری تو بی دیاره زور پیری ایتر بو بسرتو خورتی حزب که هزار تکدرو گیره شوینو زیانی بو پز هیا برزانیش لوه کدی بوی خلق بگشتی لشعرکان امرازی بوا لالوما دستی حلگرتو برویده نداموه مکوریانی عزیز و خوشویست، لیر دابم شوید دینا کوتایی ام بشه خویند نو اکتبی چشتی مجوری هجاری تا بشه کتر و لشه بی کتر در پیتندگی نوا شاد و احرام و بختور بجین.